از آن در لحن رست لحن رست یکی از الحان زیبای قرآنی هستش که زیاد شنیدید در مددهی های فارسی هم حتی شنیدید حالا نمونه ای از نمونه های لحن رست رو با هم آشنا میشیم دست من و دامان تو یا رسول الله درد منو درمان تو یا رسول الله می سوزم از هجران تو یا رسول الله ای رحمتن للعالمین یا رسول الله عزیز دلم بینا میگن لهن لحن راست مادر دو جهان فاطمه جان دل بستی محبانه تو هستی نظر کن زنایت به فردای قیاوا الله الله الله الله بینا میگن لهن راست شعر معروفی که در سبوم خورداد به مناسبت آزادسازی خوردم شرم خونده میشه. ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته خور آفرین به اینا میگن لحن رست ما میخواییم لحن رست رو به صورت کامل در ازان اجرا بکنیم الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر يا بردی الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجت الله حيا الصلاة حي علا الصلاه حي علا الفلاح حي علا الفلاح حي, على الفلاح حي على خير ال حَيَّ عَلَى خَيْرِ ال... الْعَامَلِ اللّٰهُ اكبر، اللّٰهُ اكبر لَا إِلَهَ, إلا الله. لا إله إلا امطور که قبلا از کردم خدمتون از آن در سه تا له بیشتر خونده شده بیشترش چی؟ راست بعدش حجاز بعد بیات بیات معمولا قاریان ایرانی میخونن بیشتر در جهان اسلام هجاز و رسته گفتم لحن راست رو کدوم اساتید بهتر میخونن استاد تنتاوی استاد قلوش که از اونش معروفه ایران و یک عالمه قاری ایرانی که لحن راست و خوندن و میتوند ان گوش کنید از همتون التماس دعا دارم با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان می‌بریم اللهم, اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج